بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشركة كتاب الشركات والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشركين من ناض الدراهم والدنانير دون العروز مثل مال صاحبه جنسا ونوعا ويخلطانه فإن تساوى المالان في القدر بعد تساويهما في الجنس والنوع وأذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجرب المال فيما رآه ليكون الربح بينهما فهي الشركة العنان المتفق على جوازها نجي شركة صحيح إيناست كي نجفت والشركة صحيحة أجر نجفت الشركة صحيحة مبتدا خبر نجد يعني شركة صحيحة گفته شرکت صحیح این است که صحیح صحیح شرکت خبرش نیست میگه شرکت صحیح این است که خارج کند هر یکی از دو شریک من نقد و و دنانیر از درهمها و دینار های نقدی نه که کالا باشند نقد باشند چی باشند؟ ناد نقد دون العروس نکه کالا اون یعنی مالی که من و شما بخواید قرار شرک با هم شریک بشیم شرکت بزنیم شراکتی کار کنیم میگه مالمون نقد باشه از درهم و دنانیر نه عروس خوب پس خارج کند هر یکی از اونها از پول نقد دينار نارو درهم يبولي امروزي مثل مال صاحبه بمعنان دي مثل ماله صاحبش اس الله اللهاز الجنس و نوعا اللهاز جنسو نوع و يخلقانه و انو باهم ديگه مخلوط کنان انو باهم ديگه ف ان تصاوى المالان في القدر بعد تساويهما في الجنس والنوع میگه اگر مصابی شدن دو مال در قدر در اندازه بعد از که در جنس و نو جنسشون نوشون با هم مصابی بود منظور از جنس مثلا در هم یا دینار و اذین كل واحد من هم لصحیه و اجازه داد هر یکی از اون دو نفر طرفش اون همراهش به صاحبش یعنی به شریکش در این اینجا کار ای تجرب المال فی راه که تجارت کنه با اون ماله که مخلوطش کردن با هم در جایی که میبینه اونو که سود داره تا سود بین اون دو تا باشد لیکن الربح بین هوا تا سود بین هر دو تا باشد فهی شرکت العنان این نوع شرکت شرکت عنانه چون شرکت عنان داریم شرکت مفاوزه داریم شرکت وجوه داریم و شرکت عبدان داریم اینا تا شرکت هستند که در کتب بحث میشند مقصوم در کتب فقه احناف که بقیه هم جائزند مفاوضه جایزه، هم عبدان جایزه، هم وجود ولی با شراید شوافه فقط ایان و جائزه چی شرکت عنان و جایز میدونند اون سکای دیگر رو نمیدونند میگه فهی شرکت العنان این شرکت عنان هست المتفق و جوازها ها که اتفاق هست بر جایز بودنش. یعنی کل فقها ها این نوع شرکت رو که منو شما بیایم پول نقد رو با هم بگذاریم مثلا شما دوی سهزار من دوی اینا رو با هم بگذاریم و بریم یک کاری رو راه ندازیم که سود بین منو شما چه باشه؟ تقسیم بشه فقط من شما در همین دوی سهزاری که اینجا گذاشتیم با هم شریکی. ولی در مفاوزه نه در همه چیزونو شریک در سود و در زرر سودی گیر اومد شراکتیه یکی از من و شما هم جای ضرری کرد با هم چیه؟ محله خب اونو فعلا پس شرکت عنان که من و شما میاییم از نقد با هم میگذاریم کار میگیریم اینا رو در سود در و در سود این دو تا با هم دیگه چی هستیم؟ شریک هستیم. در همه چیز این این پولی که اینجا شرکت شده با هم چی حسن؟ شریک هستین. فانتفاض فا علی فی المال اگر مال با هم دیگه تساوی نبود، در مال تفاضل بود. فاخرج فا احدهما الفا والاخر و الفین یکیشون هزار خارج کرد و دیگری دو هزار یکیش یک میلیون داد دیگری دو میلیون لیکون ربح و بینه هما على قدر الماله نجاز تا سود بین آن دو نفر به اندازه مال باشد جایز است مثلا من گذاشتم یک میلیون شما گذاشتی دو میلیون سود من شده سی هزار مال منی که یک میلیونه میشه سد هزار سودان مال شما یک گذاشتی دو میلیون مال شما میشه دوست میگه این جایزه پس اگر تفاضل در مال بود یکی بیشتر گذاشت و دیگری کمتر تساوی نبود این هم جایزه ولو شرقا التصاوی فی الربح مع التفاضل فی المال او التفاضل فی الربح مع التصاوی فی المال او ان یکون الخسران و اعلا احدهما لم یا میگه اگر شرط گذاشتن دو تا شریک یا بیشتر فرقی نمیکنه اگر شرط گذاشتن اون دو تا شریک اینجا دو نفره بس شرط ها اگر اون دو تا شرط گذاشتن التساوی فی الربح که دارسود با هم مساوی باشند مع التفاضل بالمال ولی در مال تفاضل داشته باشن یکی بیشتر بده یکی کمتر ببین اگر شرط گذاشتن که سود با هم مساوی باشه ولی درمال مال تفاضل باشه أو التفاضل في الربح مع التساوي في المال يا در الربح تفاضل داشته باشند ولی مال مصابي باشه شما مثلا دو سيفوما بباري من يكسيفوما در حالي كمال من باهمت يه مصابيه أو أن يكون الخسران على ما. يا شرط قزاشتان آغاز زريري كه حاصل شد فقط بر شماه لم يجز در اين حالات جائز نیست ولی میتونن به اندازه مال تفاضل داشته باشن ولی اگر مال مساوی بوده باشه در سود یکی بیشتر ببر این جایز نیست اه؟ یا مال تفاضل بوده و سود مساوی بشه این هم جایز نیست خوف. بس تنجي كار ميجي ولا تسح شركة العروز بأن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بالنصف عرض صاحبه أو بثمن يتقاصان به فيصير حينئذ شريكين في العرزين و صحیح نیست شرکت عروس، شرکت کالا یعنی شما مثلا رأس مالت عروس هست کالای کیه؟ اون مالی که گذاشتی که با شرکت راه بندازید شرکت رو شرکت رو بقول عرب ها اونجیه کالاست میگه صحیح نیست شرکت عروس، به بی این که بیاد بفروشاد. هر یکی از آن دو نصف کالایش رو به نصف کالای صاحبش. بله. او بثمنی یتقاصان بی به. یا بفروش نصف کالاش رو سمنه به سمن سمن طرف مقابل یا تقاصان به که بعدن بیاد اینا رو با هم جور در بیارند چه بکند؟ فیسیر را اذن شریکینی فی العرزین که بگردند در اون هنگام شریک در چی؟ در کالاها خب اینو گفته صحیح نیست ولی کتاب منهجی که من خوندم طریقه تصحیح شرکته عروض توضیح داده بود و مشکلی نداشت خلاصه اینجا میگه جمله میگه و صحیح نیست شرکت عروض به این که بیاد بفروشه هر یکی از آن دو نصف کالاش رو به نصف کاله های شریکش به که این در کالا تمییز هست ببینید در پول تمییز نیست موقعی که شما پول با هم قاتیم کنید دیگه جوری قاطی میشن که دیگه مشخص نیست این پول مالکی و او اون یکی ولی در کالا نه در کالا این تمییز وجود داره فردا روز اومد کالا یکی از بین رفت مشخصه میگه صحیح نیست شرکت اروز که بیاد حریقی از آن دو بفروشه نصف کالاش رو به نصف کالاهای شما من هم کالا دارم شما هم نصف کالاهای خودمو میام به نصف کالاهای شما میدم تا خلط پیش بیاد نه یا یعنی این که من نصف کالا خودمو به شما میفروشم از شما پول میگرم به شما میفروشم از شما چی میگرم بعدا خب بعدن یه تقاسانی میم چی کار بون اندازه پولی که از شما گرفتم این کاله ها مال شما میشه و در کاله ها من شما با هم همتیش گشتیم مصابی گشتیم که با این کار فیاسی رحینا ازم شریکانی فی الارزان که با این کار میگه شریک بگردن در چی؟ در کاله ها در دو کاله ها شد در کتاب فقه مناجی آورده و طریقت تصحیح شرکتی فی حال کون رأس ماله ما عروزا ان یبیع كل منهم هم جزء من عروزه للآخر بجزء من عروزه فیسیرا شرکا فی الاروز میگه طریقه تصحیح شرکت زمانی که رأس مال عروز باشه کالا باشه اینه که هدی که از دو طرف قسمتی از کالاش رو بفروشه به کاله های طرف دیگر به کاله های طرف من قسمتی از کاله رو میفروشم و قسمتی از ها شما رو بر میدارم این شیوه رو آورده بخاطر این که خیلطمال کامل انجام بگیره که من و شما با این حال شریک در کاله ها بله، گفته این شیوه تسخیه شرکت عروزه. خب بله، دیگه شوافه هم نظراتشون اصلا یک کتابی هست مثل قدوری خودمون این نظری رو داده بعدیها اون نظر رو درش تصرف آوردن این منظور اینی که در خود اون نظر نه روش نظر دادن، روش کار کردن اینجا ایشونی که میگه صحیح نیست شرکت اروز که طرف بیاد نصف کالاش رو به نصف کالای دیگه بفروشه یا با سمنی که بعدن اینا رو با همجور در بیارند که در کالاها با هم شریک بگردن ولی در فقه معنیدی که مجموعه از مال فنون این شیوه تصحیح شرکتو زمانی که رأس المال اروز باشه توضیح داده یعنی با این شیوه که خوندیم صحيحة شركة باروز هم تيه صحيحة صحيح. ولا تصحو شركة الابدان ولا شركة الجاهي ولا شركة المفاوضة ولكل واحد من الشريكين بعده ميقل صحيح نيس شركة الابدان شركة أبدان يا همون شركة سنايئ يا شركة اعمال اينك دون افر بيانت باهم بياند اغا منو مثلا این بنایی رو با هم میکنیم یک کار مثلا دو تا جوشکارند یا خلاص دو نفر آه... کارو شریکی کارو کار میکنند کارو چکار میکنند؟ شوافی اینو جایز نمیدونند ممکنه که بیچار کل کارو انجام داد اون دیگه, دیگه اصلاً کار انجام نداد ولی فقه های دیگه با شرایط این شرکت عبدانو خب خود یعنی مذهب خودمون یعنی احناف هم عبدان هم شرکت وجوه هم شرکت مفاوزه رو جائز میدوند ولی با شرائطی که اونجا ذکر میکنند نمطلقا ولی شوافه نه فقط شرکت و رو جائز میدوند خود میگه می واسهی نیست شرکت ابدان و شرکت الجاه که همون وجوه جا جا جایگاه شرکت اعتباره و همچنین شرکت مفاوضه اینا رو هر یکی توضیح داده الان برای توضیح میدونم از پاورقی میگه شرکت عبدال همون که همون شرکت صنایع یا شرکت اعمال نامیده میشه اینه که دو نفر با هم اتفاق بکنند که کاری رو با هم شریکی کنند؟ قبول بکنند و مزد اون کار هم بینشون باشه بر حسب اتفاقی که با هم میکنند مانند دو نجار دو تا حداد آهنگر دو تا خیاط دو تا فلان دو تا رنگ کار مذهب خودمون یعنی اهناف که مطلقاً جایز دروسی بعضی از مذاهب گفتن نه بین مثلا دو تا آهنگر جایزه بین نمیدونم دو تا نجار جایزه ولی بین یک نجار و بین یک سنف دیگه جایز بعضی که مطلقاً جایز ندونستن خب مثلا مذهب شوافی پس این شد از شرکت ابدان، اما شرکت مفاوزه دیگه چیه؟ یا شرکت وجوه شرکت وجوه اینه که دو شخص بیاند یا بیشتر بیاند خرید بکنند بدون اینکه رأس المالی پولی داشته باشند از اعتبارشون استفاده بکنند از چیشون؟ از اعتبارشون چون مردم به این دو نفر چی دارند؟ اعتماد دارند و در سود با هم چی باشند؟ باله که این شرکت هم در نز حنفیه و مالکی حنابله گفته جائزه و شافعیه و مالکیه اینو باطل دونسته شرکت مفاوزه این هست که دو نفر یا بیشتر بیان شریک بشن در کاری با این شرط که در مال و در تصرف و در دین، در همه چیزی هم دیگه با هم شریک باشن هم وکیل همدیگرند و هم کفیل هم وکیلند. یعنی شما میتونید حق تصرف داری من هم حق تصرف دارم شما یک کاری کردی مردم میتونند به شما مراجعه کنند میتونن به من مراجعه کنند چون شما هم کفیل منی هم وکیل من من کاری رو انجام دادم مردم میتونن به من مراجعه کنند و میتونن به شما هم مراجعه کنند <تصفيق> اصلا امام شافعی گفته اگر شرکت مفاوزه باطل نواشه پس من هیچ باطل دیگه ای رو در دنیا نمیشناسم چون گو محقق شده برابری در این شرکت اصلا ممکن نیست چون شما در همه چیز با هم شرکت شریک شدید جز اون خرجی که برای خانواده میبرید دیگه در همه چیز با هم چید خب خلاصه شرکت عبدال شرکت جاهو شرکت مفاوزه میگی صحیح نیست بعد. ولی کل وحد من شریکین فس خود شرکت ایداشا و برای هر یکی از دو شریک هست که شرکت رو فسخ کنه زمانی که خواست منظور شرکت انانو که جائزه اونا که میگه جایز نیستن باطنن اما شرکت انانو اومد توضیح داد حالا که شرکت انانو توضیح داد من و شما میگذاریم هم شما هم من کار شریکی رو راه میاندازیم آه؟ هر کاری باشه میتونیم پول باش باشگوزفند بخریم میتونیم موبال بخریم میتونیم هر کاری رو خلاصه کارای جایس میگه چه زمان میتونن فسخ کنند؟ میگه هریکی از این دوتا ولی لیکل واحد من شریکین فسخ و شرکتی ایداشا هریکی از دو شریک میتونه شرکتو فسخ بکنه زمانی که خواست و متا مات احدهما و هر وقت یکی از این دوتا هم مرد شرکتی میشه؟ فسخ میشه من اینجوری نیست که دیگه به ارث بره مگر اینکه بجوار جدیدن بیان با اون فرزندان اون چی طرف اومد مت قرارداد بس اون چیز دیگه چون بحث شرکت من با شما باشه فرزند شما اون صفات شما رو نداره که من بیام مثلا باشته بشم شریک بشم میگه و پس هر وقت یکی از اون دو تا فسخ کرد شرکت و شرکت فسخ میشه و مت مات احدهما و هر وقت یکی از اون دوتا تا مرد او یا اینکه دیوانه شد یا چی شد؟ این فسخت شرکت فسخ میشه این شد از مختصروکی از بحث شرکت طبق مذهب امام بزرگوار امام شافعی رحمت الله علیه